اگر اجازه دهید من تمام آن را می خوانم تا خودتان مطلب را درگبید. امام صادق علیه السلام می یک عالم یهودی به امیر مؤمنان ارس کرد آیا تو در هنگام عبادت خدایت را می بینی؟ حضرت فرمودند خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم. کرد چگونه او را می بینی؟ فرمود خدا را با چشم سر نمی بینم.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 در کجا پیامبر چنین دستوری دادند؟ ابن ابی الهدید نقل می‌کند که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود حمد می‌کنم خدای را که از پرتو نور رحمتش اهل آسمان و زمین بندگی می‌کنند و ذات اقدس او هدف تمامی وسایل میباشد و ما این وسایل در میان خلق و نیز در حدیث معروف ثغله این که در منابع معتبر شما موجود است از قول رسول اکرم آمده است که اگر به اطرت من متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید چون. تصور میکنم اشتباه میکنید سند حدیث ثقلین صحیح نیست چون که بخاری در صحیح خود آن را نیاورده نه خیر اشتباه نمیکنم درستی اسناد این حدیث به قدری و و محکم است که حتی ابن حجر متعصب مینویسد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 و چنانچه همه هنگی نبوده، آن را کنار می گذشته. <تصفيق> ابو هرائره حدیث سغلین را با قید کتاب الله و سنتی نقل نموده است. این گفته های ابو هرائره از درجه اعتبار ساخت است. زیرا با نقل های مشهوری که توسط اده کسیری از علمای خودتان مطرح شده تضاد دارد. زمنان این را هم اضافه کنم که نقل ابو با مبانی عقلی هم ناسازگار است،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 رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند جز نیست که مسئله اهل بیت من در میان شما مسئله کشتی نو هست. هر که بران سوار شود نجات میابد و هر که از آن سرپیچی کند هلاک میشود. نکته دیگر الان یادم آمد. در تاریخ ثبت است که خلیفه دوم هم متوسل میشده. پس به قول شما خلیفه دومتان هم مشرک و غیر مباهد است یعنی چه؟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 آل پیامبر را خدا نمیداند، بلکه اونها را آبروی درگاه باری تالا می داند و ایشان را واسطه بین خود و خدا قرار میدهد این صحبت های شما با آنچه که قبلا شنیدم جور در نمی آید آنچه شنیده اید را دور بریزید و از آنچه می بینید صحبت کنید شما تا به حال کتاب های دعای را اید نه متاسفانه دسترسی نداشتم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 در این بین بعضی از اهل سنت حاضر در مجلس از مزامین دعا متعجب شدند. یا وجدان الله اشفع دالله، یا صادقی و موالی امی توجه <تصفيق> تو به کمای قضلتی لیوم فقری و حاجتی الى الله و بكم بکوم الى الله و استشفعتو بکوم الى الله فشفولی عند الله و از زنگ دوونی من زنوبی انداللّه فهن کم و تیل تی انداللّه و به هم به کم و به گربه کم ارجیو من انداللّه فکونو انداللّه رجای يا صادقين يا أولياء الله صلى الله عليه مجمع و لعن الله عدا الله ذا من من الأولين بالآخرين آمین رب برلالمی بی ببینید که محتوای این دعاها چیزی جز توحید و یکتا پرستی نیست. شما علمای اهل سنت با تهمت زدن به شیعیان و تحریک احساسات مردم متحصب آنان را از راه خدا منحرف میکنید. آیا این کار درستی است که برخی از علمای شما شیعیان را مورد اهانت قرار می‌دهند؟ کم لطفی می‌کنید. کدام یک از علمای ما چنین کاری کرده است؟ فخری رازی در کتاب خود هر جا که از ما یاد می‌کند می‌نویسد و اما رفذل عنهم الله. اتفاقاً برای خودم اتفاق بیش آمد که شنیدنی است. از بیت المقدس ازم دمشق بودند. جهت ادای نماز وارد مسجد جامع شدم به گوشه ای رفتم و نماز خواندم بعد از نماز متوجه نگاه خشمگین عالمی که مشغول قرائت قرآن بود شدم از مسجد خارج شدم منتظر حرکت ماشین بودم که صدای اذان نماز شب بلند شد با این فکر که ممکن است ماشین برای ادای نافلی شب توقف نکند وارد مسجد شدم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 به قدری احساسات مردم را تحریک کرد که اگر من آنجا بودم قطعا کشته می شدم. بعد از سخنرانی ادهی از مردم متوجه حضور من شدند. تا چشمشان به من افتاد مرا به باد کتک گرفتند و می گفتند ای مشرک برو بیرون. از زنده ماندن خود معیوس شده بودم تا اینکه به تشخد نماز رسیدم. با گفتن تشخد نماز در بین آنها اختلاف افتاد که این دیگر چه است که به وحدانیت خدا و نبوت رسول اکرم شهادت میدهد. نمازم که تمام شد شروع به صحبت کردم و آنها را مقلوب و آن عالم از خدا بی خبر را تفرق انداز و اختلاف افکن بین مسلمانان معرفی نمودم ایشان از من ازفایی کرده و برخی از آنان مرا به منزل خیش دعوت میکردند. این یک نمونه از حدها نمونه است که در آن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 بفرمایید ببینم آیا تا به حال به زیارت رفته و اعمال شیعیان را از نزدیک دیده اید؟ پس از کجا میگویید شیعیان رو به قبر امام نماز می‌خوانند؟ از روی همین کتاب آقا جناب واعز کتاب را می‌گیرند و به محل مورد اشاره جناب شیخ نگاه می‌کنند. از حسد تصادف زیارت علی علیه سلام بود من این قسمت را رو از روی کتاب می خانم. خود شما غذابت بفرمایید می نویسد بعد از تمام شدن زیارت شش رکت نماز خوانده می شود دو رکت هدیه به امیر المؤمنین دو هدیه به حضرت آدم و دو ركت هدیه به حضرت نوح که در جوار قبر آن امام عظیم والشعن مدفونند حال بفرمایید آیا نماز هدیه شرک است و اما در ادامه آمده زائر پس از نماز رو به قبله بایستد و دعای زیر را بخواند خدایا برای تو نماز را خواندم زیرا برای غیر تو نماز جایز نیست عجیب است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 نتیجه این نگاه سطحی این است که باید به خود ذات مقدس خداوند که دستور فرمود ملائکه بر حضرت آدم سجده کنن نیز اشکال وارد شود چرا روی چنین این تفکر سطحی و غلط که تا این حد مشکل ساز است پافشاری می کنید و حاضر نیستید از فکر دیگران استفاده کنید و اما جواب جناب آقای حافظ مگر شما آیه 169 سوره آل امران را نخوانده اید که گفته ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم یرزقون. اگر ما در مقابل قبور ائمه میستیم و حرف میزنیم با مردگان تکلم نمی کنیم بلکه با زندگان حقیقی راز دل میگوییم. از نظر ما و از منظر خداوند متعال حضرت امیر و حضرت سید و که جان خود را در راه دین فدا کردند تا بنی امیه و یزید پلید نتوانند اساس دین را از بین ببرند زنده هستند و حرفهای ما را می و وسیله تقرب ما به پربردگار هستند. هستند هم تکرار می کنم اگر عمق تفکرات خود را ابزایش دهید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 آیا نمی‌دانید که خداوند متعال در قرآن ظالمان را لعن فرموده است؟ در صحیح بخاری و صحیح مسلم از رسول خدا صلی الله علیه, علیه و و وسلم روایت شده کسی که اهل مدینه را از روی ظلم و ستم بترساند ملعون خدا، ملائکه و مردم است. در این هنگام به دلیل نزدیک شدن اذان صبح جناب واعز مجلس را ختم فرمودند